اندک اندک خیلی شود و قطره قطره سیلی گردد یعنی آنان که دست قوت ندارند سنگ خورده نگه دارند تا به وقت فرصت دمار از دماغ ظالم برارند و قتر علا قطر اذا فقط نهر و نهر علا نهر ازا ات بهرن اندک اندک به هم شود بسیار دان دانه است قله در انبار